به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه از سرزمین ترکیه براتون نقل می کنم به نام افسانه آینه جادویی برگرفته از کتاب داستان و افسانه های مردم ترکیه اثر سنتدار با ترجمه از محمد رضا شمس ترکا در قرن دهم ده قبل از میلاد از آسیای مرکزی به ترکیه اومدن و مجموعه قصه ها و افسانه های ارزشمندی رو که از اون پس جزی از زندگی و فرهنگشون شد با خودشون به اینجا آوردن این قصه های مردمی و افسانه های زیبا و شنیدنی تو خونه ها و قهوه خونه ها روایت و از نسلی به نسل دیگه منتقل شدن در روزگاران قدیم در سرزمین ترکیه پادشاهی زندگی میکرد که تنها آرزوش این بود که صاحب پسری بشه تا نام اون رو زنده نگه داره پس برای بار دوم ازدواج کرد بعد از مدتی ملکه به اون خبر داد که به زودی صاحب فرزندی میشه پادشاه از این خبر خیلی خوشحال شد از اون پس در غصر امید و شادی موج میزد، اما با این همه شاه نگران و ناراحت بود اون به ملکه گفت باید فرزندمون پسر بشه وگرنه به جلال دستور میدم سرت راست تن جدا کنه دل ملکه از شنیدن این سخنان ظالمانه به درد اومد اون ساعت ها توی اتاقش میشست و دست به دعا برمیداشت و با خداوند راز نیاز می کرد و نیاز میکرد تا اینکه بعد از نه ماه و نه روز ملکه دختری به دریا آورد ملکه بعد از شنیدن تولد دخترش چنان مضطرب و پریشون شد که از شدت ناراحتی عشک می‌ریخت. ای که مراقب اون بود از نگرانی ملکه تعجب کرد و گفت ملکه شما چرا ناراحتید نوزاد زیبایی به دنیا آوردید که پادشاه حتما به وجود اون افتخار میکنه پس علت این ناراحتی و عشریختنها چیه؟ ملکه آهی کشید و با ناراحتی گفت آه چی بگم شاه به من گفته اگه دختر به دنیا بیارم سر از جدا میکنه ندیمه که زن عاقل و خردمندی بود به ملکه دلداری داد و گفت بانوی من نگران نباشین من مطمئنم که پاچا هیچ صدمهی به شما و فرزندتون نمیزنه بعد به سرعت لباس پسرونهی به تن نوزاد پوشوند و با اعتماد به نفس گفت بانوی من بقیه کارا رو به من بسپارید و خیالتون راحت باشه ندیمه بعد از اینکه به تن نوزاد دختر لباس پسرونه پوشوند به پادشاه مشله داد که صاحب پسر شده پادشاه خیلی خوشحال شد و هدایای فراوانی بین درباریان و مستخدمان خودش تقسیم کرد قصر و چراغونی کردن و مردم هم از این خبر شادمان شدند و جشن گرفتند و در شهر مراسم آتش آتشبازی و پایکوبی برپا شد زمان میگذشت و شاهزاده خانم کم کم بزرگ میشد. هرچه شاهزاده خانم بزرگتر میشد، نگرانی ملکم بیشتر میشد و با خودش میگفت خدای من، اگه این راز بر بشه و پادشاه از موضوع خبردار بشه، چه اتفاقی میفته؟ ای خدا، حتما دستور میده جلاد سر من و دخترم رو از تن جدا کنه. و بعد ترس و وحشت تمام وجودش رو فرا میگرد اون روزها تنها و غمگین توی عیوون قصل می‌نشست، نه با کسی حرف میزد و نه چیزی می خود تا اینکه شاهزاده خانم وقتی مادرش رو در این حال دید نگران شد و علتش رو پرسید ملکم که احساس کرد زمان اون رسیدی که این راز رو به دخترش بگه اون رو به کناری برد و گفت دخترم وقتی تو به دنیا اومدی من از ترس پدرت لباس پسرونه تن تو کردم چون پدرت گفته بود که اگه نوزاد دختر باشه منو به دست جلاد میسپره حالا اون فکر میکنه که تو پسری و تصمیم داره همسری برات انتخاب کنه اگه اگه اون بفهمی که تو پسر نیستی حتما منو به قتل میرسونه شاهزاده خانم با شنیدن این ماجران مادرش رو در آغوش کشید و برای دلداری بون گفت مادرچان من همیشه از خودم میپرسیدم که چرا باید لباس پسرونه بپوشم و چرا همه با من مثل پسر رو رفتار میکنن حالا هیچ نگران نباشید من به شما قول میدم که نظرم پدرم آسیبی به شما برسونه بذارین جشن نامزدی انجام بشه ملکه مادر با نگرانی گفت مراسم نمزدی انجام بشه این امکان نداره همه چی برملا میشه و شاهزاد خانم لبخندی زد و گفت نگران نباش مادر من نخشهی دارم تی کارسازه و بعد نخشش رو برای مادرش بازگو کرد روز جشن نامزدی فرارسید. قبل از جشن نامزدی، شاهزاده در لباسی زیبا و طلایی که از حریر دوخته شده بود، در مقابل مردم ظاهر شد. پادشاه با دیدن او گفت: "به به، به به، پسر عزیزم، این بهترین روز زندگی منه. من به تو افتخار می‌کنم. وارزو دارم که برای همیشه" به خوبی و خوشی با دختری که برات انتخاب کردم و از اصیلترین خونواده های سرزمین ترکیه از زندگی کنی و خوشبخت و سعادتمند باشی شاهزاده که دنبال فرصتی بود تا نقشش را عملی کنه رو به پدر کرده گفت پدرجان امیدوارم که باعث افتخار شما باشم اما مایلم قبل از اینکه مراسم نامزدی شروع بشه با اجازه شما کمی توی باغ اسب سواری کنم آیا این اجازه رو به من میدین پادشاه با خوشحالی جواب داد البته پسرم البته و دستور داد اسب رو برای شاهزاده آماده کردن شاهزاده بر اسب سوار شد برای آخرین بار نگاهی به مادرش انداخت و اش توی چشاش حلقه زد بعد سردرگوش اسب گذاشت و گفت اسب نازنین من مثل باد برو و منو از اینجا دور کنم خیلی دور در این موقع اسب به صدا در اومد و گفت نگران نباش شاهزاده خانم چوان من مشکل تو رو میدونم. حالا تون از باد می تازم و تو رو به هر جا که آرزو داری می برم خانم افسار اسب رو کشید و اسب که میدونست وقت رفتنه چهار نعل به تاخ در اومد و مثل باد از جلوی نگهبانها ها گذشت و از دروازه قصر بیرون شاهزاده خانم و اسبش رفتند و رفتند و رفتند و تا قبل از غروب آفتاب به چمنزاری رسیدند اسب به شاهزاده خانم گفت شاهزاده خانم عزیز من تا اونجا که امکان داشت تو رو از قصد دور کردم ولی حالا باید به قصر برگردم اینطوری پدرتون فکر میکنه شما مردید و دیگه به دنبال شما نمیاد شاهزاده خانم هم قبول کرد و گفت آره فکر خوبیه از اینجا به بعد رو خودم به تنهایی میرم تو بهترین دوست منی اسب شنگم اسب گفت هر وقت به من احتیاج داشتین مطمئن باشین به کمکتون میان شاهزاده با تعجب پرسید چه جوری میای اسب گفت هفت تار مو از یالم رو بکن و به دقت از اونها مراقبت کن مبادا اونا رو گم کنی هر وقت به کمک احتیاج داشتی یکی از اونا را آتیش بزن من در یه چشم هم زدن میام سراغت اسب این رو گفت و با سرعت راه قصر رو در پیش گرفت و تاخت شاهزاده هم بدون هدف به راه افتاد رفت و رفت و رفت شاهزاده خانم افسانه ای ما رفت تا به امارت مجلل و زیبایی رسید آروم در زد پیرمردی در رو باز کرد و گفت تو چی هستی من چیکار میتونم برات انجام بدم شاهزاده خانم داستان غم انگیزی سرهم کرد و اون رو با آب و تاب برای پیرمرد تعریف کرد بعد هم گفت به در این امارت مجلل کاری هست که من بتونم انجام بدم هر کاری باشه از بر میاد، مطمئن باشین. پیرمرد که دلش با اون سوخته بود اون رو بنوان شاگرد آشپز به کار گرفت. چند روز گذشت. شاهزاده خیلی خوب و با دقت کار میکرد و به زودی تونست معاون سرآشپز بشه. طولی نکشید که سرپرست تمام آشپزها هم شد. حالا بشنوید که توی اون امارت بزرگ و مجلل کی زندگی میکرد؟ بعد در اون امارت زیبا و با شکوه پادشاهی زندگی میکرد که همسرش رو از دست داده بود. اون به این امارت اومده بود تا دور از حیاهوی مردم در آرامش به سر ببره. پادشاه وقتی غذاهای خوشپخت و خوشتعم شاهزاده خانم رو خورد، علاقمند من شد که این آشپز ماهر رو از نزدیک ملاقات کنه بنابراین دستور داد که آشپز یا همون شاهزاده خانم افسانی ما رو به حضورش بیارن. شاهزاده خانم هم یک کلاه شیک مردونه سرش گذاشت و خودش رو مثل یه پسر جوون آشپز در آورد و به ملاقات پادشاه پادشاهره. پادشاه با دیدن اون مهرش به دلش افتاد و با کنجکاوی پرسید پسرم. تو اشخاص ماهری هستی و این مهارت در سن و سال تو جای تعجب داره بگو ببینم کی هستی و از کجا اومدی شاهزاده خانم جواب داد قربان پسر تاجری ثروتمندم با پدرم و کاروانش مسافرت میکردیم که در بیابون دوچار طوفان شدیم و بعد گردباد وحشتناکی ما رو در بر گرفت به منو مثل پرکاه بلند کرد و اونقدر به دور خودش چرخوند و چرخوند که من احساس ضعف کردم و بیهوش شدم بعد هرچی گشتم کاروان پدرم رو پیدا نکردم و راهم به سمت کاخ شما افتاد پادشاه سری تکون داد و گفت پساجان من تا تو رو دیدم متوجه شدم که باید از خانواده یصیل و ثروتمندی باشی آدمی مثل تو نباید آشپزی کنه تو تو لایق مقام بالاتری هستی من سه دختر زیبا دارم تو میتونی هر کدوم رو که دوست داشتی به عنوان ام آیندت انتخاب کنی و با اون ازدواج کنی شاهزاده خانم ما یه بار دیگه در موقعیت سختی قرار گرفت پس چیکار باید کنیم شاهزاده خانم نمیدونست به پادشاه چه پاسخی بده. یه دفعه یاد اسبش افتاد. شب که شد، هفت تار موی اسبش آتیش زد در یه چشم به هم زدن اسب فوری حاضر شد. شاهزاده خانم تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد. اسب گفت: نگران نباش. یکی از دخترهای پادشاه رو انتخاب کن. من کمکت می‌کنم. شاهزاده خانم کوچکترین دختر پادشاه رو به عنوان همسر انتخاب کرد اما دختر از این وصلت راضی نبود و دلش نمیخواست با یه پسر آشپز ازدواج کنه بنابراین به پدرش گفت پدرشان من کاملا قافلگیر شدم اجازه میدین امشب درباره این موضوع فکر کنم فردا جواب خودم رو به شما میرم پادشاه هم پذیرفت و به دخترش این فرصت را داد شب که شد دختر کوچیک پادشاه ظرف آبی رو کنار پنجره اتاقش گذاشت بعد از مدت کوتاهی کبوتر سپیدی از راه رسید و در کنار ظرف آب نشست دختر یکم آب برای کبوتر باشید کبوتر به شکل جوان زیبا و رشیدی در اومد دختر با اشواندو موضوع خاستگاری جوان آشپز رو برای اون تعریف کرد و گفت من فقط امشب رو فرصت دارم تا فردا از پدرم مهلت گرفتم مرد جوون لحظه ای فکر کرد و گفت به پدرت بگو به شرطی با اون جوون ازدواج میکنه ای که آینه یه جادویی رو برات بیاره دختر پرسید آینه جادویی این آینه کجاست جوان جواب داد این آینه توی یه باغه که از اینجا خیلی خیلی دوره و دیوی از اون محافظت میکنه مطمئن باش که اون جوون به دست اون دیو کشته میشه صبح روز بعد دختر جوان پیشنهاد خودش رو با پدرش در میون گذاشت. پادشاه خواسته دخترش رو به آشپز جوان که همون شاهزاده خانم افسانه‌ای ما باشه اعلام کرد و آشپز جوان گفت: من برای پیدا کردن آینه جادویی تلاش میکنم از شما میخوام که دعای خیرتون رو بدرقه راه هم کنی بعد قصر پادشاه رو ترک کرد. شاهزاده خانم رفت و رفت و دوباره موهای اسبش را تیشد و اسب بلا فاصله حاضر شد آشپز جوون یا همون شاهزاده خانم ماجررا رو برای اسبش بازگو کرد و روی اون پرید و چارنل به طرف باغ دیف تاخت وقتی به باغ رسید قبل از اون که وارد بشه اسب گفت وقتی به بنتهای باغ رسیدی دیف با دیدن تو میگه میرم برات یه کاسه آش بیارم ولی اون میره تا چماق بزرگش رو برای کشتن تو بیاره آینه پشت پاشنه دیوه تو باید حواست رو جمع کنی و درست وقتی که دیو به تو پشت کرد آینه رو بغابی بعد هم با تمام قدرت فرار کنی و خودت رو به من برسونی تا فورا از اینجا دور بشی شاهزاده خانم یا همون آشپز جوون هر اون که از گفته بود مو به مو انجام داد درست در لحظه ای که دیو برای آوردن آش به اون پشت کرد آینه رو که پشت پاشنه دیو بود قاپیت و فرار کرد دیو نغره وحشتناکی کشید و نقش بر زمین شد چند لحظه بعد اسب وفادار شاهزاده رو به قصر پادشاه رسوند و شاهزاده خانون آینه جادوی رو به پادشاه داد اون شب کبوتر سفیدی که به طرف اتاق دختر کوچیک پادشاه پرواز کرده بود به اون گفت مرد شجایی که تونسته آینه رو از شنگار دیو بیرون بیاره لیاقت ازدواج با تو رو داره بهتره با اون ازدواج کنید و دختر کوچیک پادشاه سکوت کرد و چیزی نگفت صبح روز بعد شاهزاده که دلش برای پدر و مادرش سخت تنگ شده بود به سراغ پادشاه رفت و تمام ماجرای واقعی زندگیش رو برای اون و دخترش تعریف کرد و توی آینه جادویی نگاه کرد و پدر و مادرش رو دید که از قصه اون پیر و شکسته شدن شاهزاده از پادشاه خواست که به اون اجازه بده نزد پدر و مادرش برگرده و پادشاه هم قبول کرد و بدین ترتیب شاهزاده خانم افسانه‌ای ما بار سفر رو بست و نزد خانواده‌اش برگشت. پدر و مادر شاهزاده خانم از دیدن اون خیلی خوشحال شدن و پادشاه به اون گفت: "دخترم، خوش اومدی. من به تو افتخار میکنم و سالها سالهای سال در کنار هم زندگی کردند. افسانه ای آینه جادویی رو از مردمان سرزمین ترکیه براتون نقل کردم گرفت از کتاب داستان‌ها و افسانه‌های مردم ترکیه اثر سونا دار با ترجمه از محمد رضا شمس ایده عقیده دارن که ریشه قصه های و افسانه‌ها در اساطیر هر و عدهای دیگه بر این باورن که قصه‌ها و افسانه‌ها یادمانی از زندگی ابتدایی بشرن و خوندن قصه های آمیانه و افسانهها به شکوفایی قدرت تخیل و در نتیجه خلاقیت ما به ویژه کودکان کمک میکنه و و مایه لذت و کسب تجربه ارزشمند برای آدمیه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار عطیه زاهدی یه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر برو